سوره زمرو بنام به نام الله که بخشیندهو با رحمت است این کتاب نازل شده از جانب خداوند قدرتمند و حکیم است ما؟ این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا خداوند را بپرستید و دین را خالص و تمام برای او بخواهید. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او تکهگاه های دیگری برمیگزیینند ادعا می کنند که ما این چیزها را فقط به خاطر تقرب به خدا میپستیم. خداوند در آنچه اختلاف می کنند، میانشان به خواهد قاعد کرد زیرا او کسی را که دروغگو و ناسپاس است به راه نجات و آرامش هدایت نمیکند. اگر خدا میخواست فرزندی برای خود برگیرد از میان مخلوقاتش آن چرا که می برمیگزید. اما او پاک و منزه است او خدای واحد و قهار است او آسمان ها و زمین را به حق آفرید شب را بر روز چیره می کند و روز را بر شب و خورشید و ماه را رام خود کرده تا هر کدام تا زمان معین در مدارهای از پیش تعین شده خود جریان داشته باشند بدانید که او قدرتمند و بسیار باگذشت است شما را از یک نفس آفرید سپس از او جفتش را پدید آورد. آنگاه هشت جفت از انعام برایتان به وجود آورد. شما را در شکم های مادرانتان طوری به وجود آورد که مرحله به مرحله آفرینش جدیدی میگرفتید. آن هم درون تاریکی های سگانه این چونین است خداوندی که پروردگار شماست. فرمانروایی مطلق آن اوست و هیچ معبودی جز او نیست. با وجود این چگونه از حقاقیق منحرفتان می کنند. اگر کفران نعمتهای الهی کنید بدانید که خداوند از همه شما بینیاز است اما ناسپاسی را برازنده بندگانش نمی داند و اگر شکر گذار نعمتها باشید آن را برازنده شما می داند. بدانید که هیچ کس بار گناه کس دیگری را به دوش نمی کشن. و سرانجام بازگشت همتان به سوی پروردگارتان است تا از عملکردتان آگاهتان تان سازد زیرا او از آنچه درون سینه هاست آگاه است هنگامی که بلا و مصیبتی به انسان می رسد پروردگارش را دعا می کند و به درگاهش انابه و زاری می نماید آنگاه چون خدا نعمتی را از جانب خود به او عطا کند آن دعاها و زاریها را که قبلن کرده فراموش می کند. حتی خود نعمتی را هم که به او داده شده فراموش می و برایش عادی می شود. دوباره برای خدا همتایانی قائل می شود. قدرت الهی را به این آن نسبت میدهد تا مردم را از راه نجات بخش الهی منحرف سازد بگو اکنون چند سباقی از کفر خیش لذت ببر و بهرمند شو که به زودی اهل جهنم خواهی بود آیا کسی که به عشق خداوند تمام ساعات شب را به عبادت پرداخته یا در قیام بوده یا در سجده و از مجازات روزه حساب رسید بیمناک است و در این حال سراپای وجودش امیدوار به رحمت الهی است با کسی که از این لذت ها نبرده یکسان است بگو ای پیامبر آیا آنها که حقایق را میدانند با آنها که از آن بی خبرند یکسانند فقط خردمندان از این نکات پند میگیرند. بگو ای بندگان من که اهل ایمانی حرمت پروردگارتان را نگاه دارید و بدانید هر کس در این دنیا نیکی کند پاداش نیکی خواهد داشت زمین خدا وسیع است هجرت برای نیل و آرامش و برخورداری از نعمتها و فرصتهای جدید یک لطف بسیار بزرگ خداوند است و پاداش سابران بی به آنها داده خواهد شد بگو من معمور شدم تا فقط خدا را بپرستم و دین را برای او خالص گردانم و نیز امر شدم سرآمد تسلیم شدگان باشم بگو من از نافرمانی پروردگارم به خاطر مجازات روز بزرگ بیمناکم بگو خدا را میپرستن و دینم را فقط برای او خالص و ناب میکنم شما را خواستید به جای او بپرستید بگو زیانکاران کسانی هستند که به خود و خانوادهشان در روز قیامت زیان میرسانند آگاه باشید که این یک زیان و خسران واقعی است این چون این افراد هم از بالای سرشان طبقاتی از آتش است و هم از زیر پاهایشان و این سرنوشتی است که خداوند بندگانش را از آن بیم میدهد. پس ای بندگان من حرمت عوامر نجات بخش مرا نگاه دارید کسانی که از پرستش هر نو بت و تاغوت اجتناب میکنند و به خداوند بزرگ روی میآورند بر آنها بشارت باد تو نیز بندگانم را به پاداشی بزرگ بشارت ده همان کسانی که انباع سخن بر راه حلها را گوش میکنند و از میان آنها بهترینشان را برمیگزینند این چون این کسانی مشمول هدایت الهی شدند و حقیقتا جزو خردمندان هستند آیا کسی را که حکم عذاب برای صادر شده است تو می توانی از آتش دوزخ نجات دهی؟ اما کسانی که حرمت اوامر پروردگارشان را نگاه داشتند بناهای زیبایی برای آنهاست که دارای گرفه بر روی هم است و زیر زیران نرها است. این وعده الهی است و خداوند هیچگاه از وعدش تخلف نمی کنند. آیا نمی‌بینی که خداوند از آسمان آبی نازل می‌کند تا چون چشم سارها در زمین جاری شود آنگاه به واسطه آن محصولات مختلفی با رنگ‌های گوناگون می‌رویاند سپس آنها را زرد و خشک می‌کند و تبدیل به هیزم خرد شده می‌گرداند بدانید در تمام این نکات برای خردمندان عبرت‌هایی است آیا کسی که خدا سینه را برای اسلام تسلیم شدن در برابر حق گشوده و ظرفیتش را بالا برده و همباره در مسیر پرنور الهی است با کسانی که از این معانی بویی نبرده همانند است؟ پس وای بر سخت دلانی که یاد خدا در دلهای ایشان جایی ندارد. بیشک اینان در گمراهی واقعی به سر میبرند. خدا بهترین سخن را نازل کرده است کتابی که آیاتش از نظر عمق و زیبایی همانند یک دیگرند و مکرر شدند کتابی که با شنیدن آن لرزه بر اندام کسانی که نسبت به خدا خاشند می افتد سپس سراسر وجودشان و قلب قلبهایشان با یاد خدا آرامشی زیبا می این همان هدایت الهی است که خدا هر کرا صلاح بداند به آن رهنمون میسازد و بدانید هر کرا در گمراهی بگذارد هیچ هدایت کننده‌ای برایش وجود نخواهد داشت آیا کسی که در روز قیامت با چهره واقعی خود با عذاب الهی روبرو میشود همانند کسی است که در امنیت کامل به سر می برد و آتش هیچگاه به سراغش نمیآید بدانید به گفته شد بچشید نتیجه دستاور را کسان دیگری که قبل از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب کردند و سرانجام عذاب الهی از جایی که فکرش را هم نمی کردند به سراغشان آمد خداوند به آنها در زندگی دنیا مزه خاری و ذلت را چشاند. هرچند عذاب آخرت به مراتب بزرگتر است خاش این نکات را درک می کردند. ما برای مردم در این قرآن از هر نوع حکایت و مثلی آوردیم تا شاید پند بگیرند آن هم در قرآنی فسیح و روشن که هیچ کجی و انحرافی در آن راه ندارد امید آنکه مردم حرمت عوامر الهی را نگاه دارند خداوند مثالی میزند آیا فردی که مملوک است و آنها پیوسته در باره مالکیت اون مشاجره می کنند با کسی که تنها تسلیم یک نفر است مساوی هستند؟ ستایش مخصوص خداوند بزرگ است هرچند اکثر آنها درک نمی کنند هم تو می میری و هم آنها خواهند مرد سپس همگیتان در روز قیامت نزد خداوند به مخاسمه خواهید پرداخت چه کسی ستمکارتر از شخصی است که بر خدا دروغ بندند و انگامی که راستی به سراغش بیاید آن را تکذیب کند آیا جهنم جایگاه کافران نیست اما کسی که صدق و راستی را بیاورد و آن که تصدیقش کند همه آنها حرمتگزاران حریم الهی هست هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها یاست و این چنین است پاداش نیکوکاران بدینسان خداوند از بدترین اعمالی که مرتکب شدهاند میگذرد و به بهترین عملکردشان پاداش میدهد الیس الله بکاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونی و من لله فما له من آیا خداوند برای بندهش کافی نیست؟ حالان که کافران تو را از غیر خدا می ترسانند بدان که خداوند هر کس را در گمراهی بگذارد هیچ هدایت کننده‌ای نخواهد داشت و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده‌ای برایش وجود نخواهد داشت آیا خداوند قدرتمند و صاحب انتقام نیست چنانچه از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده خواهند گفت الله بگو پس در مورد اینهایی که به جای خدا میخوانید چه تصور میکنید اگر خداوند قصد رساندن آسیبی به من را داشته باشد آیا این خدایان دروغین می توانند این آسیب را برطرف نمایند؟ یا اگر خداوند بسته رساندن رحمتی را به من داشته باشد، آیا آنها می توانند از رحمت الهی جلوگیری کنند؟ بگو خداوند مرا کافی است و هر توکل‌کننده ای بر او می کند بگو ای قوم من هر کاری می توانید بکنید. من نیز کار خودم را می کنم. بزودی خواهید فهمید بر چه کسی عذاب خار کننده وارد می شود و آن عذاب جاودان گرفتارش می سازد ما این قرآن را برای هدایت مردم به حق بر تنازل کردیم پس هرکس کس هدایت قیش را برگرفت به نفع خود کار کرده است و هرکه که گمراه شد به زیان خود گمراه شده است و تو وکیل مدافع آنها نیستی خداوند روح مردم را هنگام مرگشان می‌گیرد و آنهایی که زنده اند روحشان را در خواب می‌گیرد چنانچه فرمان مرگشان صادر شده باشد روح آنها را نگه می‌دارد و دیگران را که موقع مرگشان فرا نرسیده برمیگرداند آن هم تا مدتی معین و تقدیر شده بدانید که در این نکات برای اهل تفکر نشانه‌هایی است آیا به غیر از خدا شفیعانی انتخاب کردند؟ بگو اگر چه آنها مالک چیزی نباشند و عقل و درکی هم نداشته باشند؟ بگو تمامی شفاعت از آن خداست، فرمانروایی آسمان ها و زمین نیز از آن اوست، و سرانجام همه به سوی او باز خواهید گشت. هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود، قلب های کسانی را که به آخرت ایمان ندارند تنفر فرا میگیرد. ولی هنگامی که به جای خدا از کسان دیگر یاد شود آنها شادمان میگردند. بگو خداوند تو آفریننده آسمان ها و زمین هستی تو داناوی نهان و آشکاری و تو در مورد اختلاف میان بندگانت داوری چونان همان می آنچه در زمین است متعلق به ظالمان باشد و حتی همانند آن نیزبان اضافه شود حاضرند با دادن همه اینها خود را از مجازات روز قیامت معاف کنند حالان که از سوی خدا چیزهایی برایشان آشکار می شود که در مخیلهشان هم نخواهد گنجید بدیها و پلیدیهای دستاوردشان بر آنها آشکار می‌شوند و آنچنان که روزی به تمسخر می گرفتند محاصرشم خواهد کرد هنگامی که بلا و مصیبتی به انسان لسد به دعا ما را می خاند. و هنگامی که نعمتی را از جانب خود به او عطا می کنیم گوگل، این نعمت دستاورد علم و دانش خود من است نه این یک امتحانی بیش نیست هرچند اکثرشان درک نمی کنند این همان است که پیشینیان نیز میگفتند اما آنچه به دست آوردند هیچ سودی به حالشان نکرد سرانجام بدیهای دستاوردشان به آنها رسید و ظالمان این گروه نیز به زودی آثار پلید عمل به آنها خواهد رسید و هرگز نخواهند توانست از دست انتقام الهی بگریزند آیا؟ نمی که خداوند برک صلاح بداند روزی فراوان میدهد و یا بر او تنگ می گیرد. در این نکته برای اهل ایمان ابرت است. بگو ای بندگان من که برخیش اصراف روا داشته اید و عمل بد بوده است. از رحمت الاغی ناامید ما شدید. خداوند بزرگ تمامی گناهان را می بخشد. زیرا او آمرزنده و باگذشت است. سبحان, الله، سبحان, الله، سبحان, الله، سبحان, الله، سبحان الله. به سوی پروردگارتان برگردید و سراپا تسلیم او شدید قبل از آنکه عذاب به سراغتان بیاید و دیگر هیچ یاوری نداشته باشید. همواره از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شده پیروی کنید قبل از آن که عذاب به طور ناگهانی شما را فراگیرد، در حالی که کاملا بیخبر هستید این پندها برای آن است که مبادا کسی در روز بیامد بگوید افسوس بر من که در فرمانهای الهی کوتاهی کردم و از تمسخور کنندگان بودم و یا اینکه که بگوید اگر خداوند مرا به راه نجات هدایت می کرد حتما از نگاه دارندگان حرمت الهی می شدم و یا اینکه چون عذاب را ببیند بگوید اگر یک بار دیگر به دنیا بازگردم حتما از نیکوکاران خواهم شد آری آیات نجات بخش من به سراغت آمد اما تو آنها را تکزیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی در روز قیامت چهره کسانی را که بر خداوند دروغ بستند سیاه میبینی آیا جهنم جایگاه متکبران نیست؟ به خداوند کسانی را که حرمت فرمانهای او را نگاه داشتند با رستگاری رهایی میبخشند و به آنها هیچ آسیبی نمی‌رسد و غمگین نخواهند شد. الله خالق همه چیز است و او وکیل هر چیزی است. کلیدهای آسمان‌ها و زمین از آن اوست. بدانید که منکران آیات الهی همه‌شان زیانکارند. بگو ای نادانان، آیا به من دستور می‌دهید که غیر خدا را بپرستم؟ هم به تو و هم به پیامبران پیش از تو وعی شده است چنانچه به خداوند بزرگ شرک ورزید تمامی اعمالتان از بین می روید بیپاداش مماند که در این صورت بطن از زیانکاران خواهید بود بلکه تو باید خداوند بزرگ را عبادت کنی و شکرگزار نعمتهای او باشید خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند حالانکه، که در روز قیامت تمام زمین در ید قدرت اوست و آسمان ها نیز به دست او در هم پیچند. پاک و منزه است و بیشک از شریکانی که برایش قائل می شوند بلند مرتبه تر. در سور دمیده شدند و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بمیرند. مگر آنها که خدا بخواهد سپس دوباره در سور دمیده شود ناگان همه برخیزند و منتظر حسابرسی شوند. در آن روز زمین به نور پروردگارش روشن می شود اعمال را پیش می و پیامبران و گواهان را می آورند و میان مردم به حق قضاوت می شود حالان که به کسی هیچ ظلمی نخواهد شد و جزای دستاورده هرکس کس بی کمکاس و داده شود زیرا خدا نسبت به عمل از هر کس دیگری آگاهتر است آنگاه کسانی که به حقایق کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم برده شوند و انگامی که به آنجا می درهای جهنم باز شود، و نگهبانان آنجا به آنها گوگند آیا پیانبران شما به سویتان نیامدند تا آیات نجات بخش پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را از دیدار چنین روزی هشدار دهند؟ گویند آری اما دیگر فرمان مجازات کافران تحقق یافته است به آنها گفته شود از درهای جهنم داخل شوید که در آن جاودان خواهید بود و چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران وسیقا الذين اتقوا ربهم الى الجنه ثم حتی اذا اوها و فتحت ابوابها و لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدی اما کسانی که حرمت پروردگارشان را نگاه داشتند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شدند وقتی به آنجا میرسند درهای بهشت گشوده شود و نگهبانان و آنجا گویند سلام بر شما بهشت گبارای با به دا آن داخل شدید که جاودانید و گویند ستایش مخصوص است که هر وعدهای به ما داد راست بود زمین را میراث ما قرار داد در بهشت هر جایش که بخواهیم منزلگاه خود را قرار دهید این چه خوبی است برای اهل عمل و فرشتگان را میبینید که دور تا دور عرش حلقه زدن و در حال تسبیح و ستایش پروردگارشان هستند میان آنها نیز به حق داوری میگردد و سرانجام این حقیقت گفته خواهد شد ستایش فقط سزاوار خداوندی است که پربردگار جهامیانه هست تر من حول العرش یسفیحون بحمد ربهم و قضی بی العالم <براح> <سؤال> <خداوند> بلند مرتبه بود <عظيم> <خوار يزد>